اصول اساسی در این فصل روش های به خاطر سپاری را که به کار بردن آنها به تنهایی پرورشی واقعی برای حافظه نیست بررسی نمی کنیم. زیرا همان گونه که در فصل سیزدهم خواهیم دید، این روش ها فقط باید در موارد خیلی خاص و به صورت گهگاه مورد استفاده قرار گیرند. در یکی از کتاب‌هایم نوشتم هنر واقعی حافظه بایستی روی اصول روانی که آن را هدایت و می می‌کنند و بر انتظارات ذهن پایه‌ریزی شود خاطرنشان می‌کنم که هر شخص حافظه جداگانه دارد و کیفیت آن اساساً بستگی به حالت احساسی که به آن جان می‌بخشد دارد هرکس مسائلی را که به آنها تمایل و علاقه دارد به خاطر می‌سپارد به عنوان مثال یک فرد ورزشکار که اسامی و مهارتهای تعداد زیادی از اسب‌های مسابقه را از حفظ دارد ممکن است قادر نباشد حتی یک فرمول فیزیک یا شیمی نسبتا ساده را حفظ کند البته این گفته به این معنا نیست که او حافظه مخصوصی در رابطه با اسب داشته باشد بلکه وی همواره به مسابقات اسب دوانی بیش از علوم دیگر علاقمند بوده و به همین دلیل حافظش در این مورد قطبندی شده است همین حالت برای یک شخص سیاستمدار نیست که سخنرانی‌های همکاران خود را به خاطر می‌سپارد وجود دارد این جمله از یک روانشناس معروف است که می‌گفت به من بگو چه چیزی را یاد می‌گیری و چه چیزی را راحت‌تر به خاطر می‌سپاری و من به تو خواهم گفت چه کسی هستی بنابراین بایستی واقعا جستجو کنید که چه کاری را دوست دارید انجام بدهید یا رهبری کنید سپس تا حد امکان مطالعه تحصیلات و کار خود را در آن جهت قرار دهید به هر حال در اینجا مشکل در نظر گرفتن نوع کار یا انضباط خاصی برای استعداد مورد نظر است زیرا مهارت‌ها و سلیقه‌ها ها غالباً با یکدیگر در یک جهت هستند ولی گاهی اوقات نیز در یک خط قرار نگرفته و حتی مخالف یکدیگر میباشند لذت بردن از یک کار مطلبی و برای آن کار مستعد بودن مطلب دیگری است این مسئله خصوصا در زمینه هنر و ادبیات کاملا مشخص است همچنین اغلب تشخیص استعدادهای واقعی یک نوجوان و تشخیص آنهایی که باید رشد کنند مشکل است استعدادهای واقعی ممکن است به صورت خفته بوده یا حالت تأخیری داشته باشد و همچنین بهتر است در زمینه جهتیابی هرفعی یا مشاغل نیز بی نهایت محتاط باشید. زیرا در بسیاری از آنها آزمایش حالت تصنعی دارند. سوای این مسئله باید متذکر شوم که گذراندن آزمون های دانشگاهی و توقعات در زندگی روزانه غالبا شخص را وادار میسازد تا اطلاعاتی را جذب کند که هیچ گونه علاقه ای به آنها نداشته و یا حتی گاهی اوقات نسبت به آنها کما بیش تنفر یا اکراه دارد. بهتر است قبل از ادامه تحصیل روی تمام انگیزه هایی که ممکن است برایتان خوشایند باشند تأکید کنید. مطمئنند درخواهید یافت که هدف از کسب این اطلاعات ارزای ها و میل به برتر بودن و پیشرفت است. به این ترتیب جذب این اطلاعات به صورت یک مشکل شخصی درآمده و به نوعی رقابت ورزشی که بایستی از آنها پیروز بیرون آمد تبدیل می شود. ولی در واقع در زمینه کارهای فکری هرچند خشن و سخت باشند، جنبه های دوست داشتنی و اقوا کننده ای نیز وجود دارد که شخص آنها را نیز به خاطر خواهد سپرد. از این مسائل می توان نتیجه گرفت که با یک حالت روانی مناسب به مقدار زیادی اصول به خاطر سپاری را موثر می سازد. بنابراین بهتر است آن را در مطالعه هر رشته ای مد نظر داشته باشید. اگر این اصول را به دقت دنبال کنید و خصوصا شرط اول تا حد امکان پیشگیری شود، می توانید مطمئن باشید که حافظه ای سریع، قوی و وفادار در اختیار خواهید داشت. در اینجا جزئیات این اصول و طریقهی به به کاربردن آنها را مورد بررسی قرار میدهم. بخش اول خوب فهمیدن قبل از یاد گرفتن پیش از آن که بخواهید یک متن از هر موضوعی را به خاطر بسپارید، ابتدا باید آن را تجزیه و تحلیل کرده و معنای دقیق آن را تا کوچکترین جزئیات بفهمید. میتوان گفت درسی که کاملا فهمیده شده باشد از قبل یاد گرفته شده است. در ادامه بهتر است در مرحله اول بفهمید که ساختمان این قطعه چگونه بوده سپس نقشه و طرح نویسنده را پیدا کرده و راهی را که او دنبال کرده است بیابید. و ببینید که وی از چه مراحلی عبور کرده و چگونه موضوع را امتداد داده است. در مرحله دوم، فرمول دقیق علمی، قسمت های مشکل و جملات یا کلمات گنگ را با مراجعه به کتب مناسب و کاملا روشن و از طریق استفاده از لغتنامهی که باید همواره در اختیار داشته باشید، مشخص و روشن سازید. همان گونه که شاپلان می گوید متن را مانند یک گنجینه و انباری از کلمات ساده و جملات قابل فهم بسازید. در این حالت، متن به دقت شما را آموزش داده، کنچکابی شما را تحریک کرده و قوه تشخیص را روشن میسازد. و فکر شما را تقویت کرده و قنا بخشیده است. ضمن آنکه اغلب برای شما گستردگی عدم اطلاعتان نسبت به بعضی مسائل را بیش از پیش مشخص میسازد. مناطق جغرافیایی از هر نوع، کوه‌ها، رودخانه‌ها، شهرها و غیره روی یک نقشه بزرگ تکرار می‌شوند. برای اینکه یک رشته وقایه تاریخی را به سادگی به خاطر بسپارید، سعی کنید روابط طبیعی را که بین آنها وجود دارد تعیین کرده و پس از اینکه این وقایه دیگر به صورت مجزا نبوده و به صورت زنجیری از عوامل و معلول ها قرار گرفتند به خاطر سپردن آنها همان اندازه که از قوه تشخیص و منطق استفاده کنید مطمئنتر خواهد بود. این نکات مهم را بعدا با دقت توضیح خواهم داد. بخش دوم از قوانین روانی حافظه استفاده کنید مهمترین قانون حافظه که حفظ تصاویر را مشروط می سازد، شدت برداشت و احساس اولیه می باشد. یک واقعه یا موضوعی را که در شما احساس شدیدی برمیانگیزد به راحتی به خاطر می سپارید. شدت آن ممکن است باعث ایجاد هیجانی شود که با آن همراه است. یا موجب ایجاد توجهی گردد که از آن ناشی شده است یک احساس حتی نامحسوس نیز میتواند عمیقا در حافظه شما مثلا اگر در زمانی که این احساس در شما ایجاد می شود در یک حالت حیجانی خاص باشید جایگیرد. اگر من بخواهم واقعی را که در درونم یک تحریک احساسی شدید ایجاد کرده به خاطر بیاورم در حافظه به سادگی نه تنها خود آن واقعه بلکه همراه با آن جزئیات ریزی را نیز به یاد خواهم آورد که به تنهایی ارزشی برای به خاطر سپردن ندارند این جزئیات در لحظه‌ای به مغز من ارائه شده که مغز حساستر شده و کمابیش به صورت عمیقی تغییراتی را که نسبت به آنها در مواقع دیگر به صورت سطحی و گذرا باقی میمانند ضبط کرده است بدین ترتیب دانش آموزی که با شور و هیجان در برابر در مدرسه یا جای دیگری در انتظار اعلام نتایج آزمونها یا یک مسئله مهم دیگر است، می‌تواند به راحتی چندین نکته جزئی را که در زمان انتظار در آنجا وجود داشته، کارهایی که انجام داده، افرادی که دیده است چیزهایی که به او گفته شده و در واقع تمام چیزهایی را که اگر با یک حالت حیجانی خاص و شدید همراه نبودند به تنهایی معنای خاصی نداشتند به خاطر آورد. بسیاری از خاطرات کودکی که تو آن با حیجانات ترس، قصه، شادی و غیره است نیز همین حالت را دارد و مانند این است که مغز تحت تأثیر حیجان توانایی بیشتری را برای ضبط احساسات و برداشتها به دست می آورد. به طور کلی ما نمیتوانیم برای به خاطر سپردن هر مسئله این حالت حیجانی را که در مورد آن صحبت کردیم در خود به وجود بیاوریم. البته ممکن است گهگاه بر اثر کنجکاوی چنین این حالت ایجاد شود. در عوض ما بر توجه تکیه می کنیم. به عبارت دیگر می توانیم برای حفظ متن یا موضوعی که در نظر داریم آن را در ذهن خود زبط کنیم، ابزار توجه را بکارگیریم. این عمل ذهنی میتواند در دو مرحله انجام گیرد. مرحله اول خواندن گذرا و سطحی متن و تنها توجه به قسمت‌های مهم آن و در مرحله دوم معطوف ساختن تمام توجه خود به همه متن میباشد. بدین ترتیب هر چیزی را که از این بازگشت ارادی توجه حفظ نکرده ایم در حافظه از بین رفته و در نیروی عصبی نیز صرف زیادی خواهیم کرد. در این حالت تنها چیزهای جالب و تجربیات با ارزش و نکات مهم را حفظ می کنیم. سوای آن، توجه کردن نیز راحتتر شده و در همان حال برداشت پذیری از طریق ایجاد تر، خلاصه های ساده و دقیق کشیدن تصاویر، بررسی خطوط و عکسها در رابطه با موضوع مورد مطالعه تقویت خواهد شد. بخش سوم چگونه موضوعات را برای مطالعه انتخاب کنیم اما در رابطه با مطالعه چند توصیه را به توصیه‌های قبلی می‌افزایم این توصیه‌ها را بسیار مفید می‌دانم زیرا مطالعه نه تنها وسیله‌ای برای تربیت فرهنگی است بلکه نقش بسیار مهمی نیز در این رابطه بر عهده دارد این کار خصوصا به شما امکان می‌دهد که گودالی را که بین دانستن و عمل وجود دارد پرساخته و به همین دلیل رفتار فردی خود را بهبود بخشید. از سوی دیگر این کار در ارتباط با جنبه های علمی آن امکان ارتباط با واقعیت هایی که هر روز در زمینه فکری خود با آنها برخورد دارید را به شما می‌دهد. بی بیشک در دوران ما رادیو و تلویزیون یکی از نقش های اصلی کتاب را که همان دادن اطلاعات است از آن گرفتند. ولی نوشته یک امتیاز قابل ملاحظه نسبت به رادیو و تلویزیون دارد و آن این است که این وسیله برای تعمق کردن ضروری است در برابر اطلاعات داده شده از طریق رادیو و تلویزیون که کمابیش به صورت انفعالی دریافت می‌شود مطالعه یک روش فعال برای آگاهی یافتن است کتاب معمولاً بهترین استعدادهای ذهنی شخص را نظیر تمرکز توجه فعال درک و برخورد اندیشه معلف با تفکر خواننده به صورتی که میتواند باعث ایجاد آشنایی دو فرد تنها شود، بارور میسازد. کتاب به عنوان غذای مغزی در رشد شخصیتی فرد نیز شرکت دارد. برخورد منظم با برداشتهای ذهنی متنوع و شناخت‌های جدید باعث ایجاد فرهنگ میشود. حافظه نیز غنی شده و یافته‌های خود را جماوری میکند. شخصیت از طریق انتخاب مداومی که یک ذهن منتقد ارائه میکند، معین میشود و تخیل در سرمنشههای ادبی سیراب میشود. برای بهتر فهمیدن افکار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی، علمی، فلسفی و اخلاقی، باید آنها را خواند و به همین دلیل کتاب آیندهای درخشانتر از گذشته خواهد داشت. زیرا میتواند خود را به اصیلترین چیزهایی که دارد محدود سازد. از این نظر بدون آنکه از ادبیاتی قابل تقدیس ستایش کنیم به شما توصیه می کنم از خواندن کتاب های کم ارزش و کتاب های ناامیدکننده که شما را تضعیف کرده و نگرانی را در شما تقویت می کند و به همین دلیل برای تعادل روحی و آرامش درونی شما خطرناک است خودداری کنید. قطعا کتاب های مفید و آرامش بخش نیز وجود دارد. برخی رمان ها را فقط به صورت سطحی مطالعه کنید. ادبیات پست و سطح پایین را که از خشونت سرشار هستند و مطالب عجیب یا بیقاعده و بینزم را که متأسفانه اغلب توسط تبلیغات فراوان و گاهی اوقات فریبنده معرفی می شوند فقط به صورت گذ بخوانید. در مقابل عناوین پروعده و فریبنده و جذاب کتابهایی از این گروه این شجاعت را داشته باشید که از خود بپرسید، آیا این کتاب ها ارزش خواندن را دارند؟ بر اثر بیهودگی یا هوس شدید برای خواندن یا بر اثر کنجکاوی که در اکثر موارد همین مسئله مطرح است، خود را مانند یک فرد گرسنه روی هر کتابی که به تازگی چاپ شده نیندازید. بگذارید تا کتاب کهنه شده و امتحان خود را پس بدهد. شاید در عرض چند ماه بعد دیگر هیچ کس از این کتب که در ابتدای چاپ خود سر و صدای زیادی برپا کرده بودند، حرفی نزند. در آن هنگام خواهید توانست دو یا سه کتابی را که هنوز از آنها صحبت می مطالعه کنید. سوای این مسئله، چیزی که به رومانها مربوط می شود، این است که آنها خطرناکترین دشمنان از نظر خورندگی وقت و پرکردن حافظه هستند. در اینجا باید از خود بپرسید که آیا این رمان‌ها چیز جدیدی برای ذهن شما در خود دارند؟ آیا آنها در ابعادی خاص همه شبیه به یکدیگر نیستند؟ با توجه به اینکه زندگی یک دایره بسته بوده و انسانها بدون اینکه بتوانند از آن خارج شوند در آن میچرخند و در واقع تعداد وقایع انگیز برای نوشتن این همه رمان بسیار کم است اما به هر حال شخصاً این نکته را میپذیرم که آنها غالباً اجازه می‌دهند تا از ناملایمات و حقایق سخت زندگی روزانه بگریزیم و به گفته رژ کارلوآ زندگی دیگری را که واقعی تر از آنچه گذشته است یا تخیلی تر از چیزی که در رویا دیده شده دنبال کنیم. اما بر اساس یک نظریه دیگر که کمی با این عقیده متفاوت است، بدون اینکه بخواهم کورکوران تایید کنم که همه چیز در همه چیز است، حداقل توانم بگویم که نویسندگان بزرگ، فلاسفه و طرفداران اخلاق در کتب با ارزش و کامل و کتبیی که گذشت زمان را تحمل کرده اند و میتوان آنها را با ارزش تلقی کرد همه چیز را احساس کرده و برشته تحریر درآورده اند در صورتی که نویسندگان درجه دوم، آنها را تنها تقلید و یا کپی میکنند در این صورت آیا نسخه اصلی نسبت به این کپی ها ارجحیت ندارد بهتر نیست به سرچشمه خالص آب برویم تا اینکه خود را از جویبارهای ضعیف و گاهی اوقات گلالودی که از آن جدا شده اند سیراب سازیم همچنین توصیه می کنم برخی از نویسندگان گنگ را که گاهی اوقات به خاطر نوشته های مبهم و نامفهوم و غیرقابل درک خود و آنهایی که حقیقت را از شکل خود خارج می سازند تا ریستر عمیق و یا تصفیه شود و آنهایی که بر اثر تجددگرایی احمقانه خود را دارای جوهر و اصل هر چیزی می دانند و به عبارت دیگر سازندگان عبرهای دودی و کتاب به اصطلاح با ارزششان را به حال خود بگذارید اجازه ندهید تحت عناوین جایزه های ادبی که ارزش بسیاری از آنها مورد شک و تردید است و از میان دهها ها عنوان کتاب یکی را انتخاب می کنند تا به تیراژهای بالا برسانند در حالی که سایر کتب در تاریکی باقی میمانند شما را بفریبند یا از طریق چاپ زندگی نامه برخی شخصیت ها که کمابیش مورد تردید هستند و درست مانند صابون یا مایع ظرفشویی که توسط ورزشکار شخصیت سیاسی و هنرمندی تبلیغ می شود تحت تأثیر قرار نگیرید. به هر حال زندگی نامه شخصیت هایی به چاپ رسیده که ارزش ادبی آنها بسیار نسبی است و اغلب تنظیم آنها و یا حتی نوشتن تمام آن توسط افراد خاصی که در این نوکارها تخصص دارند انجام شده است. در مقابل دانشمندان، هنرمندان، کاشفان و مردان سیاسی وجود دارند که از ارزش علمی و جایگاه ادبی بالایی برخوردارند. مطالعه زندگی و آثارشان در شخص تقویت فکری ایجاد کرده و به او تراوت، شادی، نشات و شجاعت میبخشد و وی را آماده میسازد تا با مشکلات درونی و بیرونی خود مبارزه کند. به هر حال نوع کتاب هرچه باشد ابتدا باید آن را با نظر به مقدمه سپس فهرست مندرجات و بالاخره نتیجهی که کتاب گرفته که معمولا خلاصه از نظریه ها و وقایه مطرح شده در آن است بررسی کنید اگر تشخیص دادید که کتابی ارزش خواندن را دارد نباید فراموش کنید که هنر خواندن با هنر فکر کردن شباهت و نیاز به صبر و جستجو دارد جمله بالا به این معناست که اولا باید کتاب را آرام بخوانید. ثانیاً گهگاه آن را رها کرده و در مورد قسمت‌هایی که خوانده اید به تفکر بپردازید. علاوه بر این، دوباره خوانی را به شما نیز توصیه می‌کنم. زیرا مسلمن نمی نمی‌توانید مطمئن باشید که در اولین مرحله تقریبا چیزی را که نویسنده می‌خواسته فهمیده اید. علاوه بر آن، با دوباره خواندن یک متن زیبایی تازه یا افکاری که در مرحله اول پنهان مانده بود، آشکار می شود. در حین مطالعه، زیر یا دور قسمت های مهم و اساسی کتاب را خط کشیده و هاشیه آن را شماره گذاری و روی صفحه آن را طبقه بندی کنید. هر بار که به نکته یا فکر در مورد چیزهایی که نویسنده گفته نیاز پیدا کنید، این پیوست شماره را به شما داده و با این یادداشت می توانید کتابی را که از سالها پیش دیگر آن را نخوانده اید مجدداً به یاد بیاورید. مسلما اگر کتاب متعلق به شما نیست، می توانید در یک دفتر جداگانه قسمت جالب آن را یادداشت کنید. بخش چهارم محفوظات را مرتب کنید. دشمن بزرگ حافظه، اختلاط خاطره ها و نقطه مقابل آن وضوح، دقت و نظم است. بنابراین سعی نکنید مقدار زیادی از مسائل را به یک باره جذب کرده و در ذهن خود بگنجانید. تنها آن قسمتهایی را مورد توجه قرار دهید که کاملا مشخص شده اند و فقط محدود به اصول و کلیات هستند. جزئیات را حف کرده و آنها را تحت پوشش افکار کلی به ذهن خود ارائه کنید. این کار حافظه را تسکین می دهد. زیرا با ارائه خاطره به صورت یک کلمه فرمول یا جمله حافظه از دست وقایه متنوع خلاص می شود. در این ره گذر این را نیز متذکر می شود که تبلیغات تجاری نیز بر این اصل پایگذاری شده است. شعارها و نامهای تولید کنندگان به صورت ساده و مشخص ارائه می گردند تا به راحتی به خاطر سفرده شوند. سوای آن نظم نیز یکی از نیازهای غیرقابل انکار ذهن می باشد و حافظه نمی‌تواند از آن سرف نظر کند. با وجود نظم حافظه می بدون اشکال حفظ کند و با کمی تلاش مقدار باور نکردنی از افکار و وقایی را مجدداً یادآوری کند. اما بدون نظم حافظه توانایی حفظ کردن را از دست می دهد. این امر در مورد نظم ذهنی اعمال و تکنیک های حفظ که در فصل سیزدهم در مورد آنها صحبت خواهیم کرد حقیقت دارد. این روش نظمی قراردادی و کمابیش مصنوعی را به شما ارائه می کند. ولی تنها نظم واقعی همان نظم منطقی می باشد بنابراین افکار کلی و افکار جنبی به صورت منطقی تنظیم می شوند. یعنی توقع بندی شده و با ارتباط های منطقی به یکدیگر متصل می گردند. از این طریق می توان ذهن را پر نمود. بدون آنکه از کارایی آن کاسته و یا مزاحمت ایجاد شود و بی آنکه وزن و فشار زیادی به آن تحمیل شود. مسئله مزبور مانع از این نمی شود که هر کس روش شخصی خود را داشته و از راههای کمابیش جالبی برای دستبندی کردن خاطرات استفاده کرده و آنها را بعدها مجددن به ذهن خود بیاورد. به ترتیب بهتر است ابتدا در حافظه معمولی علائم و نقاط بازیابی را که به خوبی انتخاب شده اند ایجاد کرد و سپس در اطراف آنها تمام خاطرات پیوستی و مسائل وابسته به آن را بندی کرد به عنوان مثال برای قرار دادن یک خاطره مبهم در یک زمان مشخص می توان آن را روی خطی از گذشته بین دو نقطه شناخته شده به نوسان درآورد. با این روش در هنگام نیاز آن را به یکی از این نقاط نزدیک و از دیگری دور نموده و با مقایسه آن با یکی از این دو تاریخی برایش تعیین می کنیم در این رابطه مثلا می توانیم بگوییم این واقعه یک هفته پس از تعطیلات، 15 روز قبل از بیماری یکی از بستگان، شب فلان اتفاق مهم و غیره روی داد. در اینجا تعطیلات، بیماری و واقعه مهم دیگر نقاط شاخصی هستند که با دقت و اطمینان زمانبندی می شوند. مسلما این مسائل می تواند برای مشخص شدن تاریخ سایر خاطرات نیز مورد استفاده قرار گیرد. بخش پنجم چگونه تکرار کنیم؟ همچنان که قبلن نیز گفتم، شدت برداشت و احساس اولیه موجب مشروط شدن حفظ و نگهداری تصاویر می گردد. به هر حال، این شدت می ضعیف و یا حتی عملا خونسا باشد. و در صورت فقدان شدت تکرار کردن نیروی بیشتری به این برداشت ضعیف میبخشد اگر کودکان را به حال خود بگذارید روش دیگری برای یادگیری و حفظ دروس ندارند آنها تکالیف خود را به صورت خست کننده ای تکرار می‌کنند همان گونه که در کتاب بیودینامیک مغز نوشته‌ام البته هنر تکرار کردن نیز وجود دارد روانشناس آلمانی اس ابینکانس نشان داده که مؤثرترین روش برای به خاطر سپردن یک متن نه تنها نیازمند چندین بار خواندن آن می باشد بلکه باید فواصل خاصی را با هر بار شروع کردن رعایت کرد. به عبارت دیگر مشاهده شده است که تأثیر مکس ها در تکرارهای اولیه مهمتر از دفعات آخر است. بنابراین باید متن را یک یا دو بار خوانده. و دیگر به آن فکر نکنید و مجددا پس از هفت یا هشت دقیقه آن را مطالعه کنید. کار زمیر ناخداگاه برای طبقه بندی، تصفیه و ضبط متن که قبلا در مورد آن صحبت کردیم و باز هم بحث خواهیم کرد به صورت خودکار انجام می شود. مثلا مشاهده شده که اگر شخص ناچار باشد برای یادگیری یک متن یازده بار آن را به صورت متوالی بخواند، اگر بین این دوباره خانی ها یک مکس چند دقیقه‌ای وجود داشته باشد، تعداد این دفعات بیش از شش بار نخواهد بود. در واقع فاصله بین این تناوب ها اجازه می دهد تا پیوندهای نامناسبی که ممکن است ایجاد شود از بین رفته و پیوندهای مناسب که در این حالت تقویت می دچار دو دوچار تأثیر فراموشی نشود. علاوه بر آن همان گونه که آقای گیوم خاطرنشان می‌سازد همانطور همانطور که یک بازگشت در فضا باعث ظهور خطوط اصلی یک مجموعه فرضی می‌شود بازگشت و عقب‌نشینی در زمان نیز برای ایجاد طرح مانند آن مناسب است مطالعه در دفعات اول و دوم باید با صدای بلند انجام شود و سپس آن را در ذهن تکرار کنید این روش بر پایه آزمایش های بسیاری با عنوان بهترین روش تشخیص داده شده است زیرا تکرار ذهنی نسبت به تکرار با صدای بلند نیاز به توجه بیشتری دارد از سوی دیگر دو یا سه جلسه مطالعه نسبت به یک جلسه طولانی ارجحیت دارد زیرا در طول یک جلسه طولانی توجه به سرعت کاهش میابد در واقع پس از مدتی توجهی که روی کار صرف می‌شود تضعیف شده و شخص این کار را کمابیش به صورت خودکار ادامه می‌دهد اما در عین حال نبایستی در این کار زیاد روی و دوره های مطالعه را به دفعات زیاد تکرار کرد زیرا در این صورت اگرچه توجه فرصتی برای خسته شدن ندارد ولی وقتی نیز برای آن که وارد عمل شود در اختیار نخواهد داشت و این خود نقص دیگری است یک تمرین فکری مانند هر کار فیزیکی نیازمند جا افتادن است پس از هر جلسه باید استراحت کرد یا به کاری پرداخت که احتیاج چندانی به فعالیت فکری نداشته باشد و یا حداقل با عمل حفظ کردن و به خاطر سپردن تفاوت داشته باشد نظیر کپی کردن یادداشتها، نقاشی حل یک مسئله ریاضی فیزیک، شیمی و غیره. خصوصا اگر در این هنگام کار یا استراحتی که نیاز به تلاش شدید توجه نداشته باشد انجام شود، مسائلی که در زمیر ناخداگاه به خاطر سپرده ایم ثابت شده و برای همیشه به حافظه وارد می شوند. در اینجا یک پدیده کاملا عمومی مورد نظر است. زیرا این امر در حیوان نیز مانند انسان صادق است، علاوه بر آن، این موضوع همچنین برای یادگیری حرکات نظیر یادگیری گفتاری و برای یادگیری از طریق ارتباط یا درک نیز مطرح می باشد. به هر حال تأثیر استراحت قابل ملاحظه است. افرادی که نامها را کمی پس از آن که می فراموش می کنند، می توانند روشی را که توسط وکیل معروف لابوری مورد استفاده قرار گرفته به کار ببرند. هنگامی که او با کسی ملاقات میکرد که مایل بود نامش را حفظ کند، مکالمه خود را با وی به صورتی تنظیم میکرد که نام شخص چندین بار در طول آن تکرار شود. مثلا او این طور صحبت میکرد. اوه oh, مثلا شما، اسمتان؟ آقای دوپانسیه؟ چقدر تجباور است؟ من زمانی در ماشسه مردی به نام لئون دوپانسیه را میشناختم. آقای دوپانسیه چقدر مرد خوبی بود؟ آیا شما رابطه فامیلی با آقای لیون دوپانسیه دارید؟ خیر؟ بگذاریم. به هر حال از آشنایی با شما بسیار خوشفخت شدم آقای دوپانسیه. البته این کار تنها یک تمرین برای به خاطر سپردن است. آقای لابوری نیاز داشت نام یک شخص را پنج یا شش بار با صدای بلند تکرار کند تا بتواند آن را حفظ کند. ولی با انجام این کار او تنها یک پیوند در حافظه خود تشکیل نداده بود. بلکه از این طریق یک دوست نیز برای خود دست و پا می کرد.